شما حتما نمیدانید که از جمله بونه های تفسیر که بسیار هم با اهمیت تفسیر موضوعی چه که علامه تبا تبایی رحمت الله علیه میفرمایند که اساسا تفسیر قرآن به قرآن آموزه اهل بیته مقفول مونده بود من زنده کرده. تفسیر موضوعی اولین پایش تفسیر قرآن دو یعنی اگر کسی معتقده به تفسیر قرآن به قرآن نباشد عملا تفسیر موضوعی هم لغو قرد حتی فوزلای اهل سنت که اخیرا در تفسیر موضوعی سخن گفتن اونها هم گفتن که پایه و سنگ زیرین این نگاه رو در تفسیر قرآن مجید علی ابن ابی علیه السلام گذاشته است حالا از فرزندان بزرگوار سخن نگفتن که خاطر مخاطب این که اعتماد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 که به نظر من میراث بحث دیه اینا استناد میکنند میگن خب اگر خدا بنا بود که موضوعیت رو دوست داشته باشه خودش تفسیر قرآن موضوعی, موضوعی میکرد دیگه آیات توحیدش یه جا بذار آیات نبوتش یه جا بذار یه مقدمه برش بنویش یه مؤخرا براش بنویش خدا تأمیرش از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و درباره این قرآن معدبه الله این در قران الله این قرآن سفره خوده پس ازش بهره رگیرید مستتعضم در حدی حق حتی که توان در خودتون در بیارید و سفره رنگارنگه این خودشه ای. حالا این آقایون مثلا از جمهوری اسلامی دکتر سید محمد باقر قوجتی حفظه الله که فنیان گزار علوم قرآنی در دانشگاه است به شدت مخالف تفسیر موضوعی است. این اصلا تفسیر موضوعی نباید بشه. در اولین کنگره قران که اون زمان در تشکیلات عالی ورپایگاری برگزار میشود آی صبحانه هم که ادعا میکنن هم بنیانگذار تفسیر موضوعی به فارسی در ایران می‌شو مخالفت میکردن می‌گفتن موافقت می‌کنه ولی من فکر می‌کنم که این که میگم از این جهاد زاگیر این است که شما دو تا جهادگیری دارید یک مرتبه جهادگیری تعلیمی عام دارید اونجا همجوری باشه بهتره یعنی شما در مسجدتون مثلا حضرت ها ما، جماعت میگه بخاطر دوتا دو تا نمازش تفسیر بگید و یه مرتبه میخواید برای عموم دانشتویان که بالا همه ی هستن تفسیر بگید یا برای نسایی در اینجا تفسیر بگید این برای ایجاد جاذبه و خستنه شدن و دل‌ها را به لرزه در آوردم و گاهی هم شاد کردم و گاهی تمن شدن این یوریش بوده اما یه مرتبه می‌خواید که اون پیام واقعی حدیثی در موضوعات رو از قرآن استخراج کنید و این کنید هیچ جا هیچ راهی تفسیر موضوعی نداری شما چه میتوانید بگید که درباره توحید صفات حرف خدا اینه اون زمانی که همه آیات مربوط به صفات توحید صفات رو یه دیده باشید. این ماجرا با اون ماجرا دو تا. و لذا جدال درش هم بیفاید است. از میکنم ریشه ها بود. ولی شما تا اوائل قرن چهارده یا حتی اواسط قرن چارده بودید تفسیر موضوعی خبر ندارید. می شود با قاطعیت ادعا کرد که واقعا در کارسی آید صبحانی اولین تفسیر موضوعی رو نوشته و در عربی شیخ محمود شلتوت اولین تفسیر موضوعی رو نوشته اما ریشه این جریان رو در سیره زید بن علی رضوان الله تعالی علیه ببینید که این خیلی قابل توجه هست